الحمد لله رب العالمين الله على این آیه که میخوایم تلاوت کنیم توش تشبیه تمثیلیست من تشبیه تمثیلی رو برای شما گفتم نه تشبیه هیئت به هیئت صورت به صورت حال به حال مثل به مثل اینا همه عنوانیه که توی تفاسیر ممکنه یکی بگن حالی به حالی کشیده یه جا بگه صورت شبهت به صورت، یه جای دیگه بگه مثلاً آه به هم مسئله شبهت به هیئت همه اینها یکیه تشبیه تمثیلی، تشبیه هیئت حیعت به هیئت و مشبه و مشبه و به هر دوتا چی هستن میگید؟ حیعتن، هر دوتا حیعتن، گرچه ممکنه یک کلمه باشه که مثال براتون زدم که یک کلمه بود، که الهلال ها؟ اما این که الهلال یعنی این هلالی که دو دل آسمان جرشت است همه اینها دیدیم اینجا الان داره مجموعه به مجموعه تشبیه میشه و تو قرآن تشبیه تمثیلی آمده زیادم آمده آیات زیادی هم هست خیلی از مفصلی نیمونه تشبیه مفرد فهمیدن اصلا زیبایی تشبیه از بین بگی رفته این مسئله که مسئله کلب این تحمل علیه یل هست او تطرک هایل هست تو سوره اعراف در مورد بلعم با اون که او رو به به قول ما سگی با این خصوصیات میکنه یعنی هیئت و مجموعه و شعن بلعم با را رو بذاره یه طرف یه سکانس یه سگی با این خصوصیات هم یه سکانس مثل هم ها و موارد دیگری مثل این مثل لذین هم ملوتورا سملم یه ملوها که مثل همار یحمه را اصفارا و مثل اینایه پس بنابراین این تشبیه ها بود بعد در تشبیه تمثیلی مچه شبه که از هیئت مشبه هیئت مشبه هم به گرفته میشه محزوفه یعنی است که بگید تو عبارت آورده نمیشه چون مجموعه از حیعته اون هیئت حیعت فهمیده میشه ولی بگید ذکر نمیشه یعنی الان تو این تشبیحاتی که ما خوندیم وقت شبه هیچ کدوم ذکر بگو نشد این نما این نما حسر کرده ها یعنی دنیا رو جزین نبین حال دنیا جزین حال نیست یعنی حال دیگری بگو ندارد حال دنیا جزین حال نیست انما مسله حیات دنیا چماغ یعنی کم مثل مان به حسب مضافه دیگه یعنی انما هی عطول حیات از دنیا یه یعنی حیات از دنیا مثل اون که اندل هله دنیا رو در نظر بگیر در اینکه یه زرق و بری داره بعد دوران زرق و برقش تموم میشه به افول میرسه و تموم میشه این دنیا ها که سیر سعودی بعد نزولی داره و ظاهر زیبایی که بین میره این دنیا کماین یعنی کمثل ماین مثل حیعت آبیست انزلنا هومن از سما که این آب رو ما از آسمان فرستادیم یعنی باران کماین یعنی کمترین مثل بارانیست که حیات بخش از آسمان بگید نازل میشه انزلناه من از سما صفته بگید ما است اونم گفتم کماین یعنی چی بگید؟ کمثل ماین که حیعت ماین فختلت بهی نباطل عرض فختلت بهی بهی باش باید سببیته میخوره به ما پس اختلاط پیدا میکنه با اون گیاهان زمین به سبب اون یعنی به سبب اون گیاهان زمین پرپشت میشن کسرت پیدا میکنن اختلط بیهی یعنی به سبب, به سبب حاضل ما نبات الارز نبات الارز یعنی زمینی که شما دارید دوش را بید گیاهان زمین بگید به واسطه این به سبب این سبز میشن و هم تنیده میشن مما این ملمن بیانی است. من چیه؟ بیانیه است حال است از برای اون نوات و گیاهان زمین به واسطه این باران بگید به سبب این باران سر برمی آورند ما یعکل و انناس و لنان مما ما یع و یعنی یعکل و هو آهد سله بگید شده از گیاهانی که یا اكله الناس وال انا گیاهانی که مردم میخورن انعام هم میخورن اولاً ناسو گفته یعنی بگو اصل داستان ناسه. انعام هم یعنی حیات به واسطه همین گیاهانیه که از زمین بگید رویدنی شده. شما حساب بکنید اگه این کره زمین بود اما خشک بود. اون نداشت. آیا میشد توش زندگی کرد؟ مم ما. مم ما یعنی مبینن ما، گیاهانی که بیان باشن از این گیاهانی که مردم میخورن و انعام میخورن یعنی یه سری گیاهان برای چراست یه سری گیاهان برای بگید خوراکه مما مم یکولو ناس و انعام حتی پس گیاهان سبت شد حیوانات که در اختیار انسانن، انعام انعام یعنی ها یعنی اون حیواناتی که شما بگید اونا رو پرورششون میدید متوجه شدی چی میگم یا نه کاری به گیاهانی که به قول معروف خرگوش و موش و غیره میخورن کاری نداریم اون زمین سبز شده چیزی که شما میخوای در اومده اونی که شما میخوای خوراک تو بشه و شورا خوراک دام تو بشه انعام درست شد؟ نصر خود انعام یعنی چهارپایان حلفلام هم داره یعنی چهارپایان شما یعنی یعکلو انناسو و انعامو هم متوشدی؟ یعنی چهارپایانشون یعنی اصل داستان سر اینه که این زمینی که مرتع شده خوراک شما و دامهای شماست اصلا مال شماست یعنی زندگیتون تنظیم میشه با این حتی این حتی رو میگن حتی ابتداییه ما بعدش از نظر لفظی بگید نقطه سر خطه اما اصلا از نظر معنایی حتی متعلقه به ما قبله یعنی آب میاد زمین بگید سرسبز میشه تا این که یعنی حتی از معنایی قایت اختلافه زمین پرپوش تا اینکه که ازا اخذت ارزو، زخرفه ها و زینت و زن اهلوها انهم قادرون علیها ازا اضافه میشه به خیل شرط منصوب به جزای شرطه ازا مستقبل محقق و یعنی حتما این اتفاق میفته از اول خلقتم بوده اخذت الارز و زخرفه ها اخذت یعنی گرفت الارز یعنی همین زمین زخرفه ها یعنی وسایل زینتی شد زینت خودش رو گرفت و زینت و خودش رو آراست اززینت تزینت بوده تا تبدیل بزا شده شده ززینت ادغام شده همزه آمده معلومه براتون یا نه شده اززینت تزینت یعنی زینت پذیروف زینت و زینا زینت کرد تزین بگید زینت شد آراسته شد و زینت اینجا زمین رو این الان در واقع استاره مکنیه است ستاره چیه مکنیه است زمین که مشبهه تشبیه شده به یک عروس که مظهر بگید جمال و زیبایی است که این عروس زیورالاتش رو میگیره اخذت و بگو اززینت تزینت یعنی در واقع دفته این زمین همچه عروسی بگید زیورالات و خود می و به زینت می نشیند. یعنی تشبیه کرده مشبه به مشبه آن هست شده یکی از لوازم و خصوصیاتش ولی برای مشبه ثابت شده فهمیدید یعنی اصطار است خب اخذتل عرض و زخروفه ها و زیند این فعل از زیند عرض شده و زنه و زنه این چی؟ این و زن هم به معنی گمانه هم به معنی یقینه درست شد؟ این تو قرآن هم اومده اما اصلش بیشترش برای گمانه حالا نگاه کنید و زنه اهلها انه هم قادرون علیه ها اهلها یعنی اهل اون ارض یعنی مالکانش یعنی بگید نزدیکان اونایی که تسلط بر این زمین دارن زنه یعنی گمان رعیبه به یقین میبرند خیلی همچین خوشبهالشون میشه که انه که اونها قادرون علیها توانا هستن بر این زمین یعنی میگن این زمین مال ماست ما قدرت پیدا کردیم با این زمین آه زمینه میشه میشه که منبع قدرتشون منبع سران گمان میکنن که همه چی دارن این زمینه سعب شده همچو عروسی زیبا زیورالات و رنگارنگ بر خود آویخته مثل یک عروس زیبا در جلوی چشم اینهاست اینها گمانشون برای اینه که بگید این زمین حاصل خیز مال اونهاست این انه هم به مستر میره جای دو تا مقبول زمین هست زمین اهلها انه هم قادرون علیه هم علیه هم تعلق قادرون چی میشه وقتی زمین این طور بگو اختلطنه باطل عرض جیاها پر پشت در میان درست شد گیاه که به نفع مردم و چهار پایانشونه ها سبز تا جایی که این زمین همچین قشنگ آراسته شده و مردمان گمان میکنن که صاحب این زمینن هم عطاها. عطاها جواب این سبز. عطاها امرونا لیلن او نهارن لیلن او بگو می آید بر این زمین ازاد. عطاها امر ونا فرمان ما بر این زمین میرسه صاحب فرمان ما بر این زمین میرسه حکم ما بر این زمین حاکم میشه عطاها یعنی عطا الیها منسوب به نزع حافظ امر و نافعل شه حکم و قضا اونا دستور ما میرسه و چی میشه دستور ما برسه؟ فجعلناها حسیدا فجعلناها بگی جعلناها تو مفهوریه خامی خوره به عرض حسید فعیده به منو مفهوره یعنی محسودتن محسوده یعنی چی؟ درو شده جعلناها حسیدا وزن فعیل اگه به معنای مفعول باشه مذکر و محننس درش یکیه میگیم رجلون قطیدون امرادون قطیدون داره چی چه کفتیم یا نه؟ لذا دیگه حسیدتن بگو نفر بوده فجالناها حسیدان که ان لم تقنبل امس این که انلم تقنبل امس این جمله حال است از برای خواهی جلناها این زمین رو درو شده قرار میدین فمیگه ها یعنی امرمون که میرسه فاصله نداره یه بار من فارو بهتون گفتم ها یعنی بلا فاصله سر همون موقعی که باید انجام بشه فجلناها حسیدن که انلم تقنه بل امس اک کعن مخفف از مسقل است بوده که نه زمیر شان محذوف الان اسم میشه لم تقنبل امس خبرشه گرفتید یا نه گویا گویا گویا شأنین است لم تقنبل امس بعضی ها میگن اصلا زمیر شأن لازم نیست میشه زمیر عادی در نظر بگی میشه بگه نه ها یعنی اون زمین لم تقنبه لام ن بگید ابن نشان تو مغنی میگه اتفاقا به در زمین نشان نگیرید یعنی بگی که نه ها لم تق بگید گویا اصلا این در دیروزی وجود براش نداشته گویا این اصلا دیروزی نداشته یعنی دیروز زیبا این ال امس منظور دیروز نیسته، ال امس داره و این منظور یعنی بگی گذشته یعنی گویا گذشته بگو سبز و اززینت و اخذت على عرض و زخروفه ها اصلا نداشته گویا اینجا باهر بوده اصلا هیچی این در حالی که قرارش میدیم درو شده در حالی که اصلا انگار بگی گذشته سرسبزی نداشته است لم تقنه بلمست شد. میگه حیات دنیا مثل اینه یعنی زندگی دنیاتون اینطوریه که به یه جایی میرسه که شما شاد میشی خوشحال میشی به قول من میرسی فکر میکنی همه چی به کامته بعد یک همه چی بگید به هم میرسه میبینی انگار اصلا بگو همش خواب بود خیال بود از بین هیچیش باقی بگو دنیایی گرفتید یا نه پس آیا میشه به این اعتماد کرد؟ لذا میفرماید کزالکن نفصل الا آیات کذالک یعنی تفسیلا کذالک تفسیل مغل مطلقه توضیح این چیه؟ چه چجوری با مثال برات توضیح دادیم قشن؟ کزالکن کذالک نفصل الا آیات الا آیات یعنی آیاتمون ما آیاتمون اینجوری واضح برات میگی نفصل اما کزالکه نفستلال آیات برای کی؟ بگید ها؟ یا یتفکرون برای جماعتی که بگو یتفکرون فیل مزاره یعنی همیشه در حال بگو تفکرن حالات رو میسنجن میبینن یادشون بگید نمیره لغومن یتفکرون ما اینجوری توضیح میدیم اما به شرطی که طرف تفکر مدام داشته باشه تفصیل آیات ما جلوه چشش بگیرد باشه نشد بگه قشم زمیرشن که انهو دیگه ها که انهو بعد اون موقع اون بعد بدنم تقنبله امس پیش مرجع زمیر و خبر که اما اگه که ها بگیریم میخوره به عرض یعنی که انه لرزه درست شده نه؟ گودم ابن شان معتقده که چی بگیریم؟ همین زمیر معمولی بگیری بهتر از زمیر شانه چون میگه زمیر شان چند تا خلاف حصی توشه که تو زمیر عادی نیست خب تمام شد عرض کردیم که ابن شان میگه زمیر عادی بگیرید بهتره جمهور میگن زمیر شن بگیرید ها هر دو هم بر اساس استدلال میگن ولی همه قبول دارن که که مخفف از مسقله عمل می کند. درست شد؟ عمل می کند. زمیر میشه اسمش. حالا زمیر شن یا زمیر عادی. و جمله میشه؟ شه؟ واب واب استینافیه. استینافیه. حالا گفت دنیا اینطوریه. ها؟ دنیا اینطوریه یا آراستگی ظاهری داره گولت میزنه تا بخواهی آراستگی به تو برسه زنن اهلها انهم قادرون علیه ها عطاها ها تا احساس میکنن به دست مثل کسی که داره خواب میبینه خواب میبینه گونی پول خواب میبینه معشوع خواب تا خواب، تا میاد نزدیکش بشه به دو سانتیش میرسه از خواب میداره به جز حسرت هیچی باقی دنیا طلبم اینه تا میاد دنیا را به اون شکلی که همچین دلش میخواد به دست بیاره عطاها هم رو اسرائیل ازرایل میرسی ببینی همه چی از بین وقت و فقط تو موندی و طبعاته بگید تازه این مال اون کسیه که دنیا رو بهش بدنم دنیا تازه به همه بگی نمیدم تازه دنیا رو هم بدن. باز دنیا رو به همه نمیدن این آیا دیدید تو سوره اصراح است من کان یوری دول آجلت عجل نالهو ما نشاء لمن نورید میگه کسی دنبال دنیا باشه دنیا بخواد این نیستش که ما محرومش کنیم این دنیا محلی باشه که بگیم چرا دنیا طلبی کردی؟ نه این دنیا نده کیبر میکنیم کسی رو تو این دنیا نپاداش میدیم اینجا جاش نیست علیه حساب اما اجلال لحو ما نشا ما نشا رو میدیم لمن نورید لمن نورید بدلست از لحو یعنی برای هرکی بخواهی پس خیلی هم میدونم بهشونه برسن خیلی یه چیزی میخوان اون نمیشه ما میدیم به هر کی دلمون بخواد میدیم و بگو به اندازه ای هم که میخواد میدیم به اندازه که میخوایم میدیم اینا رو در نظر بگیر میگه اون موقع ببین که آیا صرف دنبال دنیا دو یا اما این نیستش که تاریک دنیا بیشی همین دنیا میتونه پله باشه برای رسیدن به حالا نگاه کنید پس بنابراین والله و الله و ید او ابرادارسلام ید او مزاره الله هم مقدم شده مفید حسره به این میگن فاعل معنوی قبلا براتون اینو گفتیم چون جمله فعلیه بعد ضمیر فاعل دوش هست ضمیری که برمیگرد به متداد. و الله او یعنی چی یعنی خدا به طور مدامه فقط این کارو میکنه. فرا میخواند شما رو به چی بگید فرا میخواند؟ بگو الا دار السلام خدا دعوت شما میکنه به دار السلام. نه نه خدا فقط آ خدا اینو میخواد خدا دعای به دار دارد نه دعای به دنیا دنیا رو وسیله قرار داده که شما تو این باشگاه بگید تمرین کنید اما باشگاه محل مسابقه محل فلان نیست باشگاه محل تمرینه به خود رو جای دیگه باید امتحان رو دید درست شد و الله و یدعو او السلام یدعو الادار سلام. هست شده در الله دعای به دار السلام اما یدعو کیا خدا دعوت میکنه به دار السلام مقبول یدعو هست شده ها؟ تو بلاغت این خوندیم که مفعول هست شده به خاطر اختصار و تحمید اختصار و تحمید. یعنی یاد او کل عهده همه رو خدا دعوت به بهشت میکن همه رو فرقی بین هیچ کس نمیده اتماع موجهت باید بشه همه رو دعوت به بهشت بشه خدا خواستش اینه که همه رو گید بهشت بشه والله و ید او اله دار السلام نشد یا شد والله و اللهیت او ال دارسلام. پس محقولول واسه چست شده بود؟ هم مختصر شده هم امنه یعنی میتونست بگه والله و اللهیت او کل هد الدارسلام یه عبارت به این زیبایی بگو دعوت خدا دعوت عامله مثل اینا که دم در یه پرچم میزنن کی میخواد پیدا همه رو خدا دعوته ببرشتی و دار سلام. حالا دارستلام دار یعنی خانه درست شد بعضی میگن اصلا دارستلام اسم اسم بهش اسم بهش تو باشتن دارستلام لذا تو ترجمه ترجمه باید بکنن خداوند همه را همگان را فقط دعوت به دارستلام میکنن بعضی قطعا این سلام درست بهشته ولی اسم دار اسم بهشت نیست دار یعنی خانه مثل دارول آخرت. خانه آخرت دارالآخره این دار سلام از سلام یعنی سلامتی دوری از آفاد تو این دنیا آفاد داره دیدید دیگه گفتش به محض اینکه که همچین اززینت میشه اخذت العرض و زخرفاها میشه عطاها هم رو نالای لن آفت میزنه که الله حسیدن اما اگه میخوای یه جایی باشه که هیچ آفتی نداشته باشه همه چیش سلامت باشه و کاملا بگید در اختیار خواهد بکن ببور بهش طلب باش و الله و ید و یعنی دار سلامتی از سلام یعنی چی؟ سلام بعضی بازن سلام یعنی تهییت دار سلام یعنی داری که مردم توش مر فقط سلام و تحییت دارن الا سلامم سلام هم سلام بعضی دیگه میگن سلام اسم خداست اسم بگید خداست دار سلام یعنی خانه خودش اینجا خانه خدا نیست آه؟ اونجاست که خدا راضیه خدا دعوت میکنه به خانه خودش دار سلام یعنی دارهی دارالله حالا هر خودوم رو دلتون فاست از این بارات بیشتر از همه مفسرین به همین دار و سلامه به قول خودمون که با اون قبلیه سازگاری لفظیش چیه بیشتره یعنی هیچ آفتی وجود نداره و شما در کمال بگید لطفی والله و الله ید و یدعو اله داره سلام و یهدی یدعو یهد یعنی فعل مزاره ها هر آن داره شما رو دعوت میکنه فقط هم به بهش دعوت میکنه فقط هم به بهش الله هم اسم ظاهر آورد بیه نگفت انعاد او چون الله دلالت بر عظمتی داره مفغول هست کرد که بگه همه رو دعوت میکنه و یهدی اما یهدی عطف جای یدعوست و یهدی منیشا و الاسرات مستقی آه. اینجا منیشا مفعول چی شده زک شده اینجا زک شده مفعول اما هدایت خدا بگید هدایت عام نیست یعنی هر کسی منیشا شد خدا هدایتشو می فصیره اون هدایت به سراته بگید. مستقیب. نشد یا شد. خب منیشا کیه؟ ها منیشا. کسی که خودش هدایت رو بگید. تذیرفته باشه. خودش تم به هدایت الهی بده. خدا هم هدایت او را بگید. استوار میکنه به سراته. مستقیب. تایید میکنه. مثل اهدنا از سراط شما میگید اهدنا از سراط المستقیم شما تو سراط مستقیم نیستید هستید دیگه یه اهدنا ها فعله هم برای چیه بگید برای استمراره برای ادامه است. یعنی خدای ما را بر هدایت خود سراط مستقیم نگه دار یعنی لاتوز قلوبن ها بعد از هدهیتن اینجا و یهدی منیش ها یعنی منیشایی که هدایت رو پذیرفته خداوند او را بر هدایت بگید اونم سرات مستقیم سرات مستقیم مستقیم یعنی هموار با قوام راه های دیگه راه هند اما بگید به بیراهه میرسند اما سرات مستقیم راه با قوام است. یعنی راهی است که بگید استواری دارد اون کسی که در این مسیر داره تهیه طریق میکنه، حتما به مقصد میرسی خدا شما رو به راهی ادایت میکنه که حتما مقصد در انتهای اون راه اینو میگن سرات مستقیم شاه راه سرات راه بازه مستقیمه یعنی هموار حتما به مقصود میرسن. نشد یا شد؟ من مفهوم خب خدا ترجیحه بلا مرجعه که نمیکنه یکی رو بخواد یکی رو نخواد بعد چه اساسی چون حکیمه بعد چه اساسی خدا من یه شعر رو انتخاب میکنه بر اساسی که اون چی شده باشه بگه هدایت رو پذیرفته باشه حرف رو گوش کرده باشه دعوت یدوه الادار سلام رو بگیر. پاسخه مصف چون بلدا ترجیح بلامرجه یه بار عرص کردم تو خورو کلاس challenge ترجیح بلامرجه اصلا میگم بعضی ترجیح بلامرجه محاله ترجیح بلامرجه مینی انجا یعنی من یه چیزی رو ترجیح بدم بر یه چیزی دیگه بدون اینکه بگی مرجه می داشته باشه بازی ای محاله یعنی مثلا یه نفر نفر اوله یه نفر نفر سپومه من نفر سپوم رو کنم بکنم نفر اول مدالم هم بشه بدن این ظاهره اون اول همونیه که بگو اول بود ترجیه بلا مرجح اتفاق بگید نمیفته محال ها محاله شما اومدی در ظاهر به هم بیخنی بعضی میگن ترجیه بلا مرجح میشه اما بگو قبیه قبیه یعنی نفر اول بکن نفر سرخون نفر سرخون بکن نفر اول شد حالا از هفتر شدیم مدالم گره اما قویده حالا چه بگیم قویده چه بگیم محاله این از مولا از و جلل امکان ندارد پس بنابراین خدا بر اساس لیاقت استحقاق بر اساس قبول دعوت من ها رو تنظیم میکنه. خب. حالا این آیه رو لگه اگر قرار است که خدا همه را دعوت به بهشت کنن و خوبان را هدایتشان را به پذیرت درست شد؟ پس این میشه لِلَّذِينَ و الْحُسْنَا وَزِيادَتُونَ لِلَّذِينَ خبر مَقَدَّم احسنو بگید یعنی کار خوب کردن عمل و سالهات احسنو یعنی نمره قبولی گرفتن احسنو فعل و پایل و آهد سبت کسانی که نمله قبولی گرفتن کار خوب کردن برای اینها هست للزینه خبر مقدم یعنی تون للزینه موجوده للزینه الهسنا الهسنا افعال و تفضیل دیگه احسن حسنا افعال و تفضیل مثل اکبر کبرا الهسنا یعنی المسوبتالحسنا مسوبه واسه سه سه نقطه مسوبه یعنی چی؟ پاداش میگه کسانی که تو این دنیا کار خوب کنن للزین احسن و الجزا اول احسن اگه الجزا میگه میشه اله حالا المسوبه میشه چی؟ الهسنا سبب نیک براش یعنی الهسنا یعنی نیکتر سباب نیکتر هست بهتر هست یعنی ثوابی بهتر از ثواب دنیا دنیا چه ارزشی داره آه. یعنی ثوابی بهتر از کارشون کارشون چه ارزشی داره آه. احسن اون یک کار خوب کرده اما اون چیزی که ما میدیم اصلا با این قابل قیاس نیست ها برتر از اونیه که زیباتر از اونیه که اون انجام داده بعد میگه و زیادتون و زیادتون اطمی به بگید الهسن هست یعنی یه ثواب قشنگ و خوب بشمیدین و زیادتون زیادتون هم نکره آبوده و تعظیم میکنه یعنی و یه اضافه درقصده اصابی آه. مثل که میگه تو دو هزار به من داده بودی بیا این یه تومن پنج برابرون برابر. اینو گرفتی بیا اینم ده اضافه باراد دیگه هستن قابل قیاس زیادتون می یعنی تو یه کار خوب کردی ما ده برابر من جاوی الحسنت فلخو عشرو امسالها اونش هر غصتن یعنی بلزین بل احسنو یعنی اون چیزی که کار خوب کرد اله هسن هر ده برابر بشوند بهتر از اون که میکرد من جاوی الحسنت فلخو عشرو امسالها اما از اون روز زیادتون ده برابر دادیم این هم احساس دیگه اضافهش اضافه اش زیادتن نکره است برای تعظیم نه بدون اضافه تر میده خلاصه نمره قبولی رو که گرفتی دیگه بعدش دست خودها حالا تعبیر ماست بازه هر چی بخواد عنایت کنه رحمت الهی بازه هست. و زیادتون گرفتید یا نه زیادتون اثر جای حسناس ولا يرحق وجو هم قطرن ولا ذل و لا یر و خسته نمی کنه اینها رو قطران و لا زلت نه سیاهی و تیرگی قطر و نه زلت نه بگو گرد و خاک به صورت اینها می شینه دود و دود. چیزی هست و نه زلت و خاری عکسش میشه چی؟ بگید وجوهشون وجوه و هنیا و مستوشره نازره این مخالف قطره زلت مخالفش اصد صورتهای اینها عزیزه و بگید صورتهای اینها شادا و گلنداخته است ملا یرحب و به جای این لذینه احسن اون جمله اسمی از این جمله بلا یر حقه وجوه هم این وجوه هم هم بکی میخونه الازین احسنون قطرون بلا زلتون نکره در سیاقه بگید نفیه یعنی یه سر سوزن بگید ناراحتی یا بگید خاری و زلت در صورت اینها دیده بر صورت اینها نمیدشه بعد میفرماید اولایکه از خاب رو جنب. اولایی که اسم اشاره دور آورده ها منباب تعظیم اینها اینها اصحاب الجنن اینها اصحاب الجنن اینها صاحبان بهشتن همراهان بهشتن خبر مبتدامون هم فیها خالدون حالا اگر یک کسی همراه بهشت باشه هم پای با بهشت باشه خوفش ممکنه این باشه که چی؟ شما اصلا یه خونه مستجری پیدا میکنی خیلی خوب و قشنگ و درجه تنها چیزت نگرانی چیه؟ که سر سال بگی بلندت کنه حالا اگر بیاده یا از بین بره اگر بیاده بگه اصلا اینو میخوام سندشو بزنم به نام تو مال تو این میشه همین هم ویها، خالدون اینها اصحاب جنت هم خوم مبتدا خالدونه خبرش بی ها متعلقه به خالدون میخوره به جنت ها خومم یعنی اولایکه این جمله خبر دومه اولایکه این اینها بهشت مالشونه این بگی در بهشت جاب یه خبر مفتاده برده یه خبر جمعه شده انشالله نشد بله فیها متعلقه به خالدون زمینش برمیگرده به الطبخه... چند بله طبخه... الحسن یه چیز جالبی هست میباه کنید یه نفر بخواد به یه نفر یه چیزی مازاد بده میتونه در کفیت مازاد بده مثلا یه نفری به من 5 کیلو برنج شد برنجش مثلا هیلی بوده آه. حالا من می‌خوام اینو بهش به قول معروف برگردونم مثلا برنج ایرانی خوبش بده قرض دیگه خب مشخص خب مشقصد چی میگم یالا کیفیتش بالا رفت یه نفر میاد یه چیزی میده کمیتش بالاست مثلا به من یه جای 5 کیلو برنج هدیه کرده ها حالا من دستم باز شده من می‌خوام هدیه کنم میات کار میکنم به جای 5 کیلو 50 کیلو بشه هدیه میبرم خونهشون دیدید بعضیا میان یه هدیه میدن به یه نفر مثلا فرض کنید یه دونه جنسی میاره 20000 تومن میارزه اون یکی میره تلافی میکنه موقع بردن بگید یه جنس میبره 100000 تومان حسنا در کیفیته زیاده در کمیت. ها خدا میگه ما هر دو جنبش رو بگو چی شدی؟ چی گفتم یا نه؟ یعنی لبلزین احسن و او اونایی که کار خوب بکنن هم کیفیتن ما بر کارشون می افضاییم هم کمیتن و زیادن یعنی جمعیت و کیفیتشو بی نهایت میکنیم تو نیکی کردی و خلاصه ما صدها برابر جبران کردیم فضل ایدان خب اون اززینت هم که گفتم استار مکنی از قطر و زملت هم که گفتیم چیه؟ بگید نکره در سیاق نفی افاده بگید بله با. یعنی یک سر سوزن ها سر سوزن هم باز تحویر ماست یعنی یه زیغه به قول محرور عبارته آه یعنی البته میدونید که آیات دیگر رو نگاه کنید بطر و زلت رو دنبال کنید میگه دیگران مخالفین روز قیامت یرحق رو اونها هم قیافه ها در همه هم زلین هست درست چشم ها زلین است. همه چی در حال زلین خب بگذاریم تمام شد سوال نداشتیم؟ خدا. فر اون اینه. که چه می کنه؟ قرآن دعبش بر اینه. اینه. اینه. اینه. اینه. اینه. اینه. اینه. اینه. اینه. اینه. اینه. اینه. اینه. اینه. اینه. اینه. اینه. اینه. اینه. خوب و بد، سیاه و سفید صالح و طالح اینا رو کنار هم نشون میده تا بشر بگید دیدید که اگر در مورد دنیا گفت انما نما مسل الحیات دنیا کمای ننزلنا ها بعد پشتش گفت و الله و یدویلا داره سلام بعد هم گفت همفیها خالدون للزین احسنو ال حص نابگی و زیادتون ها ولاگر هو هم ولاگر هو وجود همون قط ولا ذلتتون اینو گفت حالا اینجا داره این مقابله. و نذین کسب و سیهعاه جذا و سیهتن سیهتون به مثل ها جای دیگه داریم اینجا به مثل و ترحقو هم زلتو مال هم من الله من آسمه که انما اقشیت وجوه هم قطعا من اللیل مزلمن اولا ایک از حاب نار فیها خالد حالا ما میخواییم تراکیبی رو داشتون این از اون آیاتیه که تو بحث ترکیبیش حرف است یعنی مباحث مختلف یه بحثی دارن توی ادبیات به اسم اینکه عطف بر دو معمول دو عامل مختلف جایز است یا جایز نیست عطف بر دو معمول دو عامل مختلف مثلا من بگم فرض به که جا زیدون درست شد جا زیدون مثلا فرض به فرمایی که قائمان احوم یا زاهکن احوم مثال زرم بعد بگم و امرون احوم امرون رو اد کنند به جای سه عامل جابر. ابو رو اد کنند به جای ابو عامل قابله. این رو میگم درست نیست. عط به بر دو معموله دو عامله بگید مختلف. مشخص شد نه؟ این جایز نیست. نه اصلا این واو میتونه نیابت از یه عامل بکنه. اینکه به جای دو تا عامل عمل کنه بگید بحث دارن قبول نمی‌کنن. گرفتید نه؟ اطف بعد دو معامله، دو عامله بگید مختلف جایز نیست. چطور؟ الا آقای سیبایی میگه ما از عرب شنیدیم در یک مثال جایزه، یعنی یه نمونه. اونم مثالش اینه، به مثال دیگه زیدون مال و امرون این امرون عطف به جای زید آمل ابتداریگرد حجره عطف به جایدار عامل این یه مثال رو بگی چه کار بگو. بگو اجازه دادن کسا این مثال از زبان عرب شنیده شده و قبول کردم مشابه این مثال اگر جای اومده میپسیدیم و الا بر دو معمول دو عامل مختلف جایز بگیر نشد یا شد معلوم شد نشد اون شهر عطب جایی دار عامل فی عمف عطب عامل افتداریت. آمل در سیدونی که رفته شده گفت تا آمل مختلف آمل بی آمل بدداریم دو تا چیز هم این جایست اما اینجا یکی عامل غایمن یکی آمل جاهم مثل این قابل قبول نیست این مورد باید حتما اینطوری باشه جارو مجرور باشه و حتماً بگید جارو مجروره هم به نو مقدم باشه یعنی شرطش اینه که مثل این مثال باشه جا رو مجرور باشه جا و مجرور هم بگیر مقدم باشه اینو پس بذیرفتن نه بذیرفتن اینو اینو گفتیم آیا اینو تو باب رابع مغنی به بحث ای داره باب رابع ابن شام عطب بر دو آمل عطب بر دو معمول دو عامل مختلف اونجا بحث کنم من رو یه درست کامل رو براتون گفتم. حالا با توجه به این وزی این آیه رو گفتن از این جنس گفتن اینطوریه نگاه کنید لِلَّذِينَ احسنون الْحُسْنَ حالا وزیاد حالا ما میریسیم این لِلَّذِينَ هم مثل فتّار این جاره منشون مقدم الْحُسْنَ هم مثل زیدون مطلع ماخر بود بگیم این بود خبر مقدم این بود بگو مطلع ماخر بعد میگرم مَلَّذِينَ کسبو آه سیعتون یعنی وللزینه این عطو به جایه بگید این علزینه هست سیعتون از به جایه بگید ترجمهش میشه وللزینه وللزینه کسبو سیعتون آه گرفتید یا نه وللزینه کسبو بگو سیعتون اما سیعتون به چی بگیرین؟ به ها. یعنی به مثل همون خودش. اینجا دیگه نه بر کمیتش اضافه می کنیم. نه بر بگو کمیتش همون گندی که زده تحبیل خودش می دیم کسب کسبو بگو به ها شد نه؟ این یک مکی یعنی برم مثل عطف بر دو معمول دو عامل مختلف عط به دو معمول دو عامل مختلف در مورد جواز که همین مثال فدار زیدون بر حضرته بگید. جریان یعنی کاری چوری گفته؟ وللذین کسبو بگو. وللذین کسبو السیئات سیعتون. ها؟ کسی که کار بد بکنه سیعتون. نشونش شو. این یک تا این ترکیب از اون ترکیباتی که باستم این بود که اطر بر دو معمول دو آمل مختلف رو بگم نمیخوام بگم این ترکیر اول ها فقط خستم این بود که این رو براتون بگید بکن پس للدین کسبو بگید سیعتون بگو به ده. ها مثل فددار زیدون وله حجرت کسیدو هشت که اولیه آمدش میشه کدوم؟ روز سعید لذینه آمدش ابتداییه میشه این؟ بالا بالا این لذینه هستنون لذینه که آمدش لامه دیگه هستن اینه الهوسنان که آمدش ابتداییه مثل اینه دیگه این دو دوتان بهش مثل مثال تطبیقی ماست هیچ برگی نده ترکیب دوم، ترکیب دوم. بگید اینطوری بوده و جزاء کسبو از او یه یا اللذین به حسب مزاح. یعنی بوده جزاء اللذین کسب او اسعيات. جزاء اللذین کسب او اسعيات. میشه دیگه نمیشه؟ جو ارابکش چی بوده؟ جا رو رب بک وسئل القریه چی بوده؟ وسئل اهل القریه اینم بوده جزا و لذین کسب و سیاد جزا و سیاد به مثلها جزا و سیاد بگید به مثلها اون جمله بشه خبرش جزا و لذینه کسب وسایاد جزاء وسایاتن بگید به مس لحه. درسته نه؟ یعنی جزاء وسایع علازینه کسب وسایاد بشه مبتدا، جزاء وسایاتن به مثلها لحه. آه؟ جزاء آهم جزاء وسایاتن بگید به مس. قبلش خب بعضی دیگه ترگیبات دیگهی کردن ترگیبات دیگه مثلا گفتن این اصلا جزا و سیعتم به مثله ها و ترحق هم زلتون اصلا اینا جمله معترضه است خبر مال هم من الله من آسم خبر اونه. اون جمله درسته نه بعضی گفتن اون سه تا جمله معترضه است خبر اخشیته که انما اخشیت وجود اونه. اون اونها دیگه ترکیباتیه که ما فعلا کاری به کارش بگیید بله؟ من دو تا ترکیب رو فعلا براتون گفتم درست شده؟ دوتا، یکی جزاء و چی جزاء و لزینه مبتدا بگیریم به حصف مزاح یکی بگید للزینه احسنو این عطف به جایو درستون این دوتا بعضی ها اون رو ترجیح دادن بعضی این رو هر دو رو گفتن آیه مرمو تبرسی میگه این دومگومی بهتره کشافم هم میگه دومیه که ترکیب کرد جزاء و جزاء و لزینه کسبو چیه؟ بهتر تا اینجای مطلب رو دیدیم ولذین کسب و سیعات جزا و سیعتن بگید به حالا این به مثلها باش باش زاهده است یعنی جزاء و سیعتن مثلها یعنی جزا و سیعتن ها مثلها. یعنی مثل این سیعه جزا سیعه مثل بعضی بار بارا زایده گرفتن برای تحکیل بعضی میگن نه جزا و سیعتن مقدرون متعلق به یا بگید مقدره جزا و سیعتن بگید مقدرون به مثلها ها به مثل ها سیعت مقدرون به مثل ها ما میشه متعلق به مقدران جارو مجرور بعد نکره میشه سفر مقدران مدرد. مدرد. مدرد. یا واقعون تقدیر گرفتن یا مقدران و اصلا اینه که با زایده بگید نباشه شد تبقیه ترکیب دوبام تبقیه ترکیب دوم این میشه جزا من به جای علذینه کسب و سیاد زمیر هم میذارم یا بگو جزا آل کافرین است. جزا آل کافرین، آن توجاaza، آن توجاaza سیعاتون، واحدتون به مسلا، آن واحدتون به مسلا آن توجاaza سیعاتون واحدتون بگید. به مثله ها لا یوزاد و علیه ها لا یوزاد و علیه ها ها تفسیری متوجه شده گفتم چی؟ جزا ال... کافرین یعنی جزا یکی از سیاه ها بزرش کجا شده ان پجازا پجازا یعنی چی؟ پاداش کنه شده سیاه ها, سیعتون... ها؟ انتجازا سیعتون بگو به مثلا به مثلا یعنی لا بگو علاقا. مثل اون یکی نیستش که احسنو بود الوحسنه و زیاده اینجا زیاده میادهی در کار بگی اینجا الوحسنه اینجا درکترشو تو که ایفیت میداده اینجا نه انتجازا سیعتون بگی به مثلا همون با قول معروف گندی که سرده گفتیم همونو بگیم تحویلش میدیم نه ما در کیفیت گندش اضافه میکنیم نه در بگو کمیتش ها همونو میدیم تحبیدش اما اگه کار خوب کنه مثل دانه خوبی که کاشته ما هم بر کیفیتش میفضاییم هم بر بگو کمیتش نشود یا شد و لذین کسب و سیاهات جزا و سیعتن بگید به مثلا یعنی و جزا و لذین کسب و جزا و به مثلا جزای اینها جزای سیعه به مثلشه. پاداش اینها پاداش به مثلش. نشد؟ جزای اول میشه مبتداد جزای دوم میشه خبر فقط مبتداد چی شده؟ <تصفيق> یعنی جزا و هم جزا و مثلها ببین؟ اللذین کسب و سیعت <سیاد> گفتیم بوده چی؟ جزاء و لذین کسب و سیعت و سیعته من سیعت هم جزای یک سیئه از سیئات اینها به مثل ها یعنی چی آن بگو به مثلها. پاداش اینها پاداش سیئه به مقداری بگید مثلش من همون رو بهش بدید و ترحقهم ذلتون خب دیگه معلومه وقتی پاداششون بشه جزاغ و سیعتن به مثلها ترحق و هم بگید زلتون بر مقابل اونهاستا نشد یا شد ترحق و هم زلتون اونجا گفتش که لا یرحق و وجوه هم قطرون ولا زلتون یه سر سوزن ناراحتی تو صورتشون یا زلت تو چشم و قیافه دیده؟ اینجا میگه ترحق و هم کل وجودشون رو میگیره زلت ها؟ یعنی دیدی یا نه میگه یه سر سوزن ناراحتی تو صورتش من ندیدم این؟ اینه اینجا میگه تمام وجودشون رو سر تا پا بگو خاری و زلت زنلت از تمام وجودشون میباره و ترحقه هم زنلت کدوم؟ این جمله فعلیه نمیتونه حط بشه به جای جزا و که مفرده درست نیست درست شو یا باید این رو بگید مفرد رو بگید که خبر است و این حط به جای ولزینه کسبوه جمله فعلیه به اسمیه یا باید این رو به قول خودمون جمله منطرزه بگیریم مهلا نمیشه این رو عطب کرد به جای جزاء و سیعتن که چی بوده بگید. بعضی هم حال درست کردن این جمله رو حال درست کردن که اون خیلی سخت میشه چون زلحال نداره باید زلحال بشه مبتدا مبتدا هم هم زلحال شدنش بیشه سیبه فقط درست. و زینه کسه بود وله زینه محتداز جزا و خبرش این جمله اسمی است جمله به جمله حط میشه نشود اون میشه اما به مفرد الاته به مفرد هم میشه جمله را حط کرده باید در تغییر داشته باشه باشه منصوب که اینجا نداره و ترعقه هم زنده حالا ما لهم من الله من آسم گوش این من من آسم منش زاید است برای تحکید یعنی ما لهم آسمون آسم نکره در سیاه نفعی افاده اومون میکنی یعنی هیچ نگهداری مانه این درست شد این من الله متعلق به آسمه لهم خبر مقدم ها یعنی ما لهم آسمون آسم یعنی نگهدار روز شد من الله یعنی اینا رو روز قیامت از دست خدا هیچ کسی نمیتونه بگیر بیرون بیاره ما لهم آسمون بگو من الله نشد یا شد اصمم میاد بیاد ما لهم آسمون من الله یعنی چی؟ یعنی برای اینها نیست هیچ نگه دارندهی روزتی آمد بله دیگه اصلا مای مشبرتون بلیست چرا اینجا عمل نمیکنه؟ چون جای اسم و خبرش بگی عوض شده چون جای اسم و خبرش عوض شده دیگه عمل بگو نشد یا شد این جمله مالهم من الله من آسم بهترینی که حال بشه از برای هم ذلت همه وجودشون رو میگیره در حالی که بگو در حالی که هیچ کسی هم نمیتونه اینا رو از این ذلت نجات بده از دست خدا درشون بیاره کعنما اوقشیت هم گتعن من الليل مظلم این کعنما اینجا برای تردید یعنی گویا اوغشیت وجوههم هم قطعن وجوه هم نایفایه قطعن مخبول دوبه قطعن مخبول دوبه قطعن مخبول اوغشیت یعنی گویا فرا گرفته پوشنده وجوه اینها رو قطعن اللیل قطع جمع است. پاره من اللیل صفت قطعه پاره های از شب شب تاریکتن این چیزه دیگه میگه گویا صورت‌های اینها رو قطعه لایههایی از شب پوشونده اقشیت وجوه هایی مفهول اول بوده قطعه هایی مفهول بگید بعد منللل لیل گای اوقات شب ماه داره روشنه میگه من اللیله مظلما مظلما حال است از برای اللیل در حالی که اون شب هم چی باشه بگو تاریکه تاریک باشه قطعه از شب صورت های اینها رو در حالی که اون شبه هم یه ذره نور توش نباشه مظلم باشه مظلم حال است از برای کی اللیل یعنی قطعه من اللیل تکه از شب در حالی که بگو آه؟ در حالی که بسیار یعنی شبه روشن نیست سیاه سیاه این همون تکهیه که گفته شیق قطران گفت یه ذره دود و سیاهی روی قیافه اینا نمیبینی اینجا میگه چی بگو صورت های این ها تکه از شب اونم شبه بگو تاریکه نشد زلط هم که داشته این که انما اخشیت باز حاله مثل جمله مالهم هم حال برای هم در حالی که کسی نیز نجاتشون بده در حالی که صورت هم مثل غیر بگیر سیاهه تکایش است. که اصحاب و ناره همفیها خالدون اولایک از خواب انار زیرا اینا چیه؟ هم؟ اولاقی مبتدا از خواب انار عبردشیونا اولاقی از خواب بوده اینا اولایک از خواب اینجا اولایک اسم اشاره دور اومده برا تحقیل از خواب انار حالا اونایی که تو جای سختی میابدن مثلا یه خونه بدی حالا گیرش اومده یک مسافر کنه رفته خیلی بده تنها امیدش چیه؟ که از اونجا یه روزو میاد لزم میگه اولایی که اصحابون هم همفی ها خالدون اصحابون نار خبر اولایی که, خبر اولای که خبر هم نار ها خالدون خبره هم ها خالدون منه من آسم منه زایر است بله دیگه مبتدای معخر لهم خبر مهمت ما های مشبرتون به لیسه عمل نمیکنه. نه من آسم منش زایده است یعنی آسمون بوده ما من الله آسمون این جا اسم خبر جابجا به شده دیگه عمل شد البته بعضی هاون ولزینه کسبو ولزینه رو مبتدا گرفته بودن جزا و سیعتن شد چی؟ بگی خبرش؟ و طرحهم و ذلتون رو گفتیم باید عطب کنیم به جای والذین بگید کسبوا اون موقع اینو عطب کردن بعد دوباره مالهم رو خبر گرفتن که این درست نیست یعنی شما اومدی خبرت بعد از جمله اومده که عطب شده یعنی به جمله اصلی نه درست نیست بلکه ما گفتیم مالهم من الله من آسم که انما اخشيت وجوههم فتاعلا این لا حال است از برای هم بگید این ویا و منح شروع ها می ببینه چون میگه خلاصه از کنید و یادت بیارون